اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت به نام خداوند بخشنده بخشایشگر آن زمان که آسمان از هم شکافت شود و ایزا الکواکب و آن زمان که ستارگان پراکند شوند و فروری زند و ایزا البحار فجیرت و آن زمان که دریاها به هم پیوسته شود و ایزا الکمور بعصیرت و آن زمان که قبرها زیر و رو گردد و مردگان خارج شوند علیمت نفس ما قدمت و اخرت هر کس آنچه آن را از پیش فرستاده و آنچه را برای بعد گذاشته است یا ایوها الانسان ما غرک برابی کلکریم ای انسان چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مقرور ساخته است. الَّذی همان خدایی که تو را آفرید و سامان داد و منظم ساخته ای صورت ما شاء و در هر صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. کلابل تکذیبون بالدین آری آنگونه که شما میپندارید نیست بلکه شما روز جزا را منکرید و این علیکم و بیشک نگاهبانانی بر شما گمارده شده کراما والا مقام و نویی اعمال نیکو بر شما. یالامون ما تفعلون کمیدانند شما چه میکنید؟ این الابرار لفی نعیم. بیاکن نیکان در نعمسی فراوانند. و این الفجار لفی جحیم. و پدکاران در دوزه خند. یصلون ها الدين. روز جزا بارد آن می شوند و می سوزند و ما هم عنها بغائبین و آنان هرگز از آن قایب و دور نیستند و ما ادرا ما یوم الدین تو چه میدانی روز جزا چیست؟ ثم ما باز چه میدانی روز جزا چیست نفس روزیست که هیچ کس قادر بر انجام کاری به سود دیگری نیست و همه امور در آن روز از آن خداست